الله علیه الله علیه و الله هواشمان و رحمت. والحمد لله رب العالمين و صلا الله علیه و محمد و آلکنی. الله امتدادی متعالی متشکمین الله متشکمین. و رحمت و رحمتی کیار رحمت عرض شد که برای اینکه آشنایی بشه با روایات و اهل بیت این روایات رو متقرض میشیم چون عددش زیاد دیگه به جمال احادیث بر نمیگردیم به همین کتاب وسایل و شیعه این چاپ ترجمه ای ربانی که دست من هست جلد 12 امش ابواب ما یک به در کتاب تجاره باب 15 رو ایشون در باب کسب مغنیه اووردن روایت رو خوندیم و حدیث شمر اول عرض کردیم که مشکل علی بن نبی حمزه بعد قائلی داره و از عبارت شیخ انصاری نقل کنیم که تو ابی بصیر هم ایشون توقفی داره انصافاً راجع به ابو بصیر و این دو نفر یعنی لیس و یحیی صحبه زیاد شده رساله نوشتن انصافاً دین هیث مجموع در این اصطلاح منهلات در سه محور ما معتبرین روایات شیعه رو در سه محور وارد نگاه کردیم یکی محور روایات، یکی محور رجال، یکی محور تفاسیر. اهل سنت محور تفاسیر نداره. اهل سنت مهور رجال و روایات داره. با ملاحظه سه محور. من اگه میخوام شرح بدم این چند روز با صحبت واوره این شرح بشن. با ملاحظه این سه محور در مجموع واسه علی بصیر ابهام داره انصافا. شاید هم اصحاب چون دیدن این هر دو سقه هستن، خیلی دیگه متوجه خشخاش نداره شن دقت نکرن. این گیر داره این صافاً عبارات با هم نمیکنه، کوره هایی داره و این که شخصی به نام عبدالله ابن محمد اصدی هم اونم عبوبصیره که استاد هم قبول دارند این منحصره به کتاب کشیه و همینطور که آیه صاحب قاموس اثبات کردن این مرحومه این اشتباه ابو عبوبصیر دو نفره لیس ابن بختری و ابن قاسم یا ابل قاسم مثل یکی از مشکلات همینه در عده از مصادر یحیی بن القاسمه در عده یحیی بن عبدالقاسم ترجیحشن الان در ما مشکله فوق العاده مشکله که آیا عبدالقاسمه حتی تصریح کنن که اسم ابو القاسم هم اسحاقه یعنی یحیی بن الان آیا حال من اشاره اجمالی فرابت کردم چون از داره بخوام وارد این بحث بشم خیلی طول میکشه و از این بحث فعلی ما خارجه و گیر داره تاکن میشه قبول کرد به لحاظ اینکه هر دوشون سره هستن این میشه اجمالا قبول کرد. به هر حال حدیث شماره یک رو خوندیم شماره دو البته میگن شماره یک ابي بصير جناب يحياس چون داره علي نبی ابي حمزه گذاشتن که اگر علي نبی ابي حمزه باشه ابو بصيره بعد حرفی نیست اما اصفاسش هم باز و همون مثلا هم گفتن این ابو بصير يحيى کور بوده اوني که کور نبوده این علی ابن ابی حمزه درسش رو میگه قاعده ابن بسیری ظاهرا اون یکی هم کوره حالا دی مثل های خوی های خوی خیلی اصرار ندارن از دیگه اصرار دارن که ایشون کور نبوده لیس کور نبوده کنگش ابو بسیری بوده کور نبود به ذهن من حق با قاموسه که اونم کور بوده, هر دو کور بوده. حالا میگم خیلی ابهام داره اجمالش به لحاظ تاریخی به لحاظ طبقه خودشون هم ابهام داره خیلی واقعا کارو مشکلیه بلکه این اجمالاً احادیث عبیباسیر چون بین دو نفره و هر دو سقه هستن بلکه در هر دو ادعا شده از اصحاب اجماع قابل قبول به هر این حدیث شماره یک. حدیث شماره دو نمیدونم اونجا این کتاب و چاپ جلبین این طوری نوشته؟ و ان هم؟ ان احمد ان حکم الهی نام؟ اینجا نوشه انهم ان احمد ان الحسین خیر نسخه بدل داده اونجا قرار نصفه آن, <تصفح> ان الحسین اینجا ان الحسین در یک نسخه داره انا حکم احمد که از حکم خیاط نقله میکنه اون که مصلله حسینم به نظر ما شبهه داره اینکه احمد حسین بن سعید حسین مراد حسین سعید است فرض کنم که گاه گاهی صاحب سوال از این کارا میکنه حالا ای کاش این کار نکرده بود مثلا این عبارت میوهرد در هاشی توضیح میداد ای کاش به اصطلاح صاحب وسایه ببینید این حدیث اول در کتاب کافی آمده حدیث اول اینطوره ادتا من اصحاب نام احمد ان الحسین این حدیث اول بعدش این حدیث در کافی اینجوری برده انهو ان الحکم الحیق انهو اسطلاح اصطلاح اسطلاح اسمش تعلیق میگن تعلیق است بر حدیث سابه احتمالا مرحوم شیخ هور کلمه انهور به احمد برگردونده لیکن انصافا با در نظر گرفتن شواهد ظاهرن به حسین برمیگرده نه به احمد این که در وعزه از نصخم نویشت انهر حسین این نقطهش اینه لذا به ذهن ما این طور میاد و دلیلش هم اینه که حدیث بعد از این رو گفته احمد ابن محمد اگر اینجا مرادش احمد بود دیگه تکرارش نمیکن ظاهرا این حدیث الان ارز تعلیقه اونی که الان در کافی چاپ شده اینجوریه انها ان الحکم صاحب وسائل اینجور معنا کرده عدتون من اصحاب نا ان احمد ان الحکم انها رو به احمد داریم لیکن این صاحب خود من که خونده هم انها رو به حسین میزنن نه به احمد انصافت به نظر ما ساب وسایل درست ارجاع زمین نکرد علا آیه حاله زاهن سندبال این طور باشه انهم ان احمد انه به حسین احمد که احمد اشعریست حسین و حسین سعید ان حکم الحنات یا خیات در کافی و تحذیب حنات آمده در اینجا خیات آمده نسخ مختلفه که ای خیات بوده یا حنات بوده بعضی شواهد خارجی داره که بیگه نیعت قبل و صبح به درهم احتمالا خیاط بوده اینا هننات نبود اسمش حکم ابن ایمنه و توسیق هم شده محل کلام نیست این خوب قابل اعتماده الحکم ابن ایمن الخیات ان ابی بسیر ان ابی عبدالله خال المغنیه علتی <التزوف> تضفل عرائس لا بأس <بعث> به <بكسبا> یک نقطه خیلی عجیب اینه که اولا ابو بسیر که این مطلب نقل کرده چند نفر ازش نقل کردن احتمالا احتمالا وقتی ابو بسیر آن مطلب در کوفه نقل کرده خود کوفی ها تعجب کردن بله عادتا روایت عبید بسیر یه نفر نقل میکنه کنه اگر از بسیر یهیه باشه علیه نبی ببینی اینجا علی ابن عبی همزه ان عبی بسیر اینجا حکم الخیات ان عبی بسیر این یکی حدیث شماره 3 ایوب ابن الهر ان عبی بسیر خیلی عجیبه من احتمال میدم میگم جایی نایدم احتمال میدم همین که ابو بسیر این مطلب نهار کرده بین کوفی ها خیلی آور بوده که معناش این بوده که امام اجازه میده مغنیه در اعراس رو در عروسی ها رو که سونیا نعر میکرد لذا اینا چند نفر اون از ایشون نغری کردن یکیش شاگرد معروفشه دو تا هم حکم حیا و ایوب بن ورد فکر کنم که این یک مطلب مطلب دیگه اینه که ما نمی دونیم چرا مرحوم کلینی هرسمت به آورده اینم خیلی عجیبه احتمال میره شاید کلینی نظری داشته بله خب آزادن یه متن میآور دیگه صدوق هم یه متن آورده اما کلینی هر سه متن رو شاید شاید ولی علم عند الله بخواد کلینی میگه باید به شواهد مراجعه بکن برای اثبات متن ببینید الان سه تا متن داریم سه تا راوی داریم هر راوی یه متن هر کرده متنی که علی ابن عوی حمزه رو دیروز خوندیم مثل حکم رو هم امروز خوندیم المغنیه لا بأس به با این هم متن بأس نیست مثل شماره سه ازتون من اصحابنا انا احمد انا الحسین انا نظر ابن سویل انا یحیل حلوی انا ایوب ابن الهر انا عبی بسیر این سند کاملا صحیحه هیچ مشکل نداره این سند نظر ابن سوید و یهیر حلدی سقست و ایونه هر هم که زاله قال قال ابو عبدالله علیه السلام اجر المغنیه التي تزوف و الارائس لیس به بأسون لیسد بلتی یدخل و علیه رجال اینجا نمیدونم دو دارم شاید شما ننوشته باشه اینجا نسخه بدل رو به دقت ننوشته در کتاب کافی همینطوره که خوندم لیسن. در فقیق داره و لیست بلتی داره در نسخه کافی واق نداره اما در نسخه فقیق در نسخه تحذیب هم واق نداره لیست بلتی تبعیت خلاه هر رجال این راجع به مطن حدیث سه تا مطن شد یکیش که از همه کمتره المغنیه تلتی تضافل ارائس لا بأس به کس با سنخ دیگری برش نقل نکرده یعنی اینجور میفهمیم جده بکنیم المغنیه کس کس با حرام ایلالتی تضافل این یکی یک مرد دو هم المغنیه تلتی تضافل ارائس لیسه بهی بأسون ولیسد بلتیت خبه علیه هر جان دو قسم ورده این دو تا مند متن سوم اولی بود. سال تو انکس بال مغنیات، فقط علتی یت خلا علی هر رجال حرامان و علتی تودع اهل اعراس نیست بهی بعثان. و هو قول الله عزوجل من الناس منیسته ده بال حدیث. لی الله انکس بال الله. در این متن سوم آیه هم داره. من احتمال بودم میدونم دیگه شما میدونی که ماها اینا رو از مشایخ که نشدیم در شهر کتب هم نیامده من احتمال بودم مرحوم کلیمی خیلی زرافت به کار بازه انصافا دیده یک حدیثیست که سه مرتب داره یک متن کوتاه، یک متن بزرگتر باز یک متن متنبلتر از همه متن‌هاش هاش بدون اشکال فرد اینه علموغنیت و لطیت از خلق چون اون دوبامی رو نداره نهایتش این میشه المغنیه التي تضافل عرائس لیس بابعصا ساکته نه آیه داره نه قسم دوم داره او یکیش نه قسم دوم هم داره بلیصد اونی رو که صاحب وافی و مرحوم صاحب کفایه بهش تمسک کردن این اون نیست که توش لیسد بالتی ادخل داره یعنی مرحوم صاحب وافی و مرحوم صاف اون متن اولی رو نگانه که المغنیه که فقط مغنیه لطیز از افرال ارائسه من اگه یاتون باشه در وقت خوندن مقاسه رو ارز کنم سه تا مرتن داره نه دو تا مرت و عجیبه هر متنش متول تره با قول مرحوم اولیش پنج شلمست بعدیش تن تا دیگه اضافه بعدیش آیه هم بهش اضافه کرده من احتمال میدم و اگر واقعا مراد کلینی این بوده واقعا نشون میده که کلینی فوق العاده دقیقه خیلی دقت عجیبی رو به کار برده میخاد بگه اون که در مشایخ بر ما کردن نسخه مختلفی است میگه حالا خود شما هستیم حالا ما چه کار بکنیم ما انصافا نمیتونیم الان تصمیم بگیریم با این استراب در متنی که پیدا شده نمیتونیم این یک بعد چه کار بکنیم به لحاظ معنا مرحوم صاحب وافی و بعد مرحوم کفایی اینطور که حالا الان احتماله، حالا هم که اندما ایشون اینا اینطور فهمیدن علتیت خلا علیه هر رجال حرامه اونم به خاطر رجال و علتیت هزو فلعرائس لا برسه پس متلق خود غنا لا برسه فقط قد علتیت خلا علیه هر این معنایی ای که اما صاحب وسائل چی فهمیده؟ خوب دقت بکنید. صاحب وسائل لیست دلتی یک خله علی هر رجال رو حال گرفته. خب دقیق شبیه این معنام آیه خوی فرده. آیه خوی نه از وسائل خودش. خب دقت بکنید. اینجوری شده. اجرالمغنیه التي تزف فلعرايس لیس به باسون لیس فی حال لیس دلتیه فی حال یعنی در عرائس هم به شرکی در مجلس عروسی مرد نباشه مرحوم صاحب وافی و صاحب که فهمیش اون رو چیفنده اونا وام گرفتن و لیسد وام رو وام و آتفه گرفتن یا واب استینافی لیسد بلکی طرق فرق... محسن روشن شده مرد رو دقیقه رو کنید صاحب و صاحب مرحوم و محسن استاد اینجور معنا کردن مغنیه‌ای که در مجالس عروسی اشغال نداره در حالی که مردا اونجا نباشن تماشو لیست بالتیت تزفل عرائس لکن به شرط که لیست لیست یدخلا علیها الرجال لذا دیروز عنوان صاحب وسایل خوندیم ببینید باب تحریم کسب المغنیه الا لذفل عرائس اذا لم يدخل علیه الرجال بگر جواب که آفه چی شد پس اختلاف در صاحب کفایه مرحوم فاضل سبزواری با مثل مرحوم شیخ هور که از که مرحوم استادم همین مثل قبول کرد یعنی این معناه رو کردم اختلاف در این است که این عبارتی چجوری معناه بکنید آیا این معناش چی که دو قسم است علیتی تزو فول عراسلا و علیتی یک خلال حجال توی اشکال هم این معناه بود که صاحب یا یک قسم است علتی تضفل عرائس به که رجال نباشن حلالو. این معنای صاحب وسائده احتمالاً وجود واب و عدم واب شاید مؤثر بوده این صاحب هم دیمشون واب هم حالیه گرفت اما فکر نکم به لحاظه عربیت حالا که عرب زبان هستن عجر المغنیت علتی تضفل عرائس لیسه بهی برسون لیسه به خلوت. خلوه فی حال انه حالایت خلوه علیه الرجال بگی این نفسه حرام نشده، دیگه استثناء معنی داده فقط همین ت... زفت عرائس با این شرط یعنی المغنیه مطلقاً حرامون اون الا این صوره؟ زف ولعرائس به شرطی که مردم بوش نده؟ عرائس اگه زن و مر با هم قاطی هستن بازم نه. روشن بود؟ این نفسه حرام نیست دیگه. نه فی نفسه حرامه الا اینجا استثناء شده حکم خارج شده به خاطرش اون ما... وقت ما چون روایات داریم که اجر مغنیه مطلقاً حرامه این سر این که صاحب وسائل نکته رو گفته چون ما روایت مطلق داریم که اجر المغنیه حرامون اصلا تعبیر داریم اینشالا میاد در روایت آینده که سمن المغنیه سختون و سمن الکلب سختون و سمن المغنیه سختون صاحب وسائل از اون راه وارد شده لخر کردیم؟ صاحب وسائل چرا وارد شده؟ ما ممکن است از, از راه دیگه وارد بشیم اون راه اینه اگر آقایین کتاب وسائل دستشون هست اردن این جل یا با کامپیوتر باب 99 از باب ما یکتصف این کاش اینه در ما همیشه میگیم در مسائل روایات خیلی لطایفش رو حس یعنی زبط بکنیم در باب 99 که باب تحریم غناز شماره 9 به حسب این چاپی که دست من صفحه 227 شماره 9 از باب 99 همین از ما یک تساوی مرهم کلینی عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن یحیی بن مبارکیشون نمیشه عن عبدالله بن جلل که جزء اجلاد عن سماعه بن مهران عن عبی بصیر چون که من گشتم ممکن در کتابهای دیگه‌ام باشه چون یکی که من گشتم از عبی بصیر در باب غنا غیر از این سه روایت که خوندیین اینم داری قال سلف ابو عبد الله عليه السلام عن قول لا ازوج اجتن بر رس منل اوسان وجتن و بو قول الزور قال الغناء ذلك اگر بگیم اجو اگر اون دو تا رو با هم زمینه بکنیم خوب تماشو اون روایت سماعه ابن مهران عن ابي وصير رو و من احتمال میدم از چرا سه نفر ناگاهانی نغر کردن احتمالاً ابو بسیر یک رواست مطلق داشته که غنا حرامه اینم نغر کرده ولذا کوشی ها تأکید کردن که این مطلب ابو بسیر گفته و نغفته. و خیلی عجیب ها علی نبی عبی حمزه حکم ابن و عیوب ابن هر سه نفری از ابو بسیر نغر کردن که در زدخل عرائس لیس بیگه برسه رو روشن شد؟ لکن معذرت با وجود روایت در کتاب تهذیب و در کتاب فقیه این متن سوم آمده در کافی هر سه متن در در تهذیبم هر سه آمده اومده ما از کافی نگرفته از سید حسین سیدی از مصدر مرحوم کلینی کلینی از سید حسین سیدی این راجع به شرح این حدیث من ان تعالی البته در اینجا نیامده در بعضی از عبارات اهل سنت دیدم حالا شاید تو روایت ما هم باشه الان تو ذهن نیست این که امام میاد تمسک میکنه یا میاد سوال میکنه فشتن با رس منل اوسان فشتنه با قول از دور نشاءالله ارزو میکنیم بعد در شرح آیه. شاید ناظر به این باشه که امام میخواد بفرمان که در این آیه مبارکه قناه مرادف شرک قرار داده شده چون فشتنه چطور داره که خدا برنی کن به کن لا تعبود الله در ناحیه امر احسان به والدین مثل توحید الهی قرار داده شده در ناحیه نهی جنا مثل شرک قرار داده شده خیلی ظاهر آیا اگر, اگر اینطور باشه خوب دقت این نکته لطیفی به نظرم من که کلمات بعضی از اهل سنت دیدم حالا بعدش چون رابطه می‌کنه چون در خلال مطالعات دیدم کجا دیدم که وجتن با رکس منل اوسان یعنی تنها وجتن بو قول ازور نیورده این که آیه را کامل ارده شاید اشاره به این نکته باشه که در این آیه مبارکه اگر هم واقعا این مطلب اینطور باشه یعنی استظهار از آیه تمام بشه که این شده ارز میکنیم این خیلی عظیمه چون ریسمنال اوسان که شرکه بعدش هم غنا قول از زور یعنی که ما در زندگی از فرم قول از زور زور معنای کج یعنی منحرف یعنی اعوج اعوجاج. ولی ازا به غیبت هم تفسیر شده به کهزو هم تفسیر شده به کل اقوال محرمه تخصیل شد یکیشم قناعه که انما معلوم میشه از ناهی فکری عبادت اوسان از ناهی کلامی قول کج قول عوج قولی که مستقیم نیست این ردیف اونه چطور در ناهی اقا ادرسمنال اوسان منفیه در ناهی تلفظ هم و معنای لطیم شمه از اگه این مراد باشه در معنای در مقام تلفظ و در مقام گفتار گفتند صحبت کرده این صحبت رو مواظب باشید که قول زور توی مقام تلفظ مثل عبادت ال تو مقام عقیده است تو مقام عقیده به اصطلاح عبادت ال حرامه تو مقام تلفظ و کلام قول زور یکی از مصادیق قول زور هم جنا قرار داده شده که اگر این باشه نشون میده چقدر درجه مثلا در همین باب در حدیث قبلش در روایت ابن عبی اومان هم برزر قال قول الله و جتنه با قول زور قال قول زور علی خینا اول آیه نداره ما احتمال میدیم اون روایاتی که اول آیه داره میخواد این مقایسه رو بقید بکنیم که قول زور توی آلم تقبل و آلم تلفز مثل عبادت و اوسان در عالم عقیده شما همچنان که در بابه اقواهی نباید شرف داشته باشید در الفاظتون هم مواظب باشید کج و معوج و اوج و, و, و, عوج و جاج اونی که از چون از اصل کلمه زور از زور, از زور این استخوان سینه که اوجاج داره زورا هم که بغداد بسن چون رود دجه اوجاج پیدا میکنه زورا اصطلاحان اوجاج زور هم به معنای اوجاج و کجی راه کج راه مؤوج راه غیر مستقیم وشتن بابول زور انصافش اگر ما قبول بکنیم چون رو باید کلیری فقط کرده قبول بکنیم ابو بسیر مطلق نقل کرده با این شاهد صحیح همین است که استثناء زفخل عرائسه اون علتیت خلال علیه رجال اون یک گیری داره یا باید حال بگیریم یا باید بگیم ثابت نیست در مکن دوم ثابت نبود توی بعضی ها چون توی اولی داره علتیت خلال علیه رجال حرامه. ذلتی تدعى الى الاعراس ليس بيبرسا این متن رو تو کفایه میوره این متن الاتی یسخلو علیها الرجال اول ور بعد الاتی تزوف العرایس این انصافاً به حرف کفایه میخوره اما متن دوم و سومی هم داشتیم الان برای ما کاملا واضح نیست اون متن اساسی روایت ابی بصیر چیه حالا مضافا به اینکه اون متن اول رو که گفتیم شبهه داره از ابی جعفر نقل کرده این دوتا تا رو از ابي عبدالله نقل کرده ما احتمال دادیم در حد احتمالا این نمیخوام روش بنامم شاید ابو بصیر ابتذائا از امام باقر مطلبی شنیده بوده در کوفه نقل کرده اهل کوفه تعجب کردن چون دو رسم کرده بعد رفته خدمت امام صادق سوال کرده امام فهمید یک قسم ذکر تذکر الهرا این احتمال داره یعنی تعدد امام اینطور نباشه که یک امر اشتباهی کتابتی باشه واقعا دو بار سوال کرده یه بار از امام باغیر باز برای تاکید خدمت امام صادق رسیده عبارت امام صادق خیلی موشره فقط ضعف العراصف استثناء شده این راجع به روات ابی و بعد الوتی یا بلخی لکن که کله با وضوح مصدر با صحت سند و با وجودش در کتاب کافی و فغیه و تهذیب دقت میکنید از ها ما مثل مرحوم شیخ مفید شیخ توسی بعضی این روات و لذا بعدی های بیاندن گفتن که استثناء پیش ما ثابت نیست. خب برای استثناء خوبه خب این صافن سن چه ماتن. روایت برای استثناء ازدخل عرائس لا برسمه. لکه معذالک فتوانم احتمالش این است که شاید باز روایت بعدی در این جد مؤثر بوده که اینشالله میخونه. حدیث شماره چهار مرموم شیخ کلینی عنه ابی علیان استاد ایشان از اشایره قم بسیار مرد بزرگوار و جلیل احمد بن ادریس اسمشون گویا به اسم احمد بن ادریس میاد انا حسن بن علی شخصیت بزرگی هستند یک نقاط ابهام در شخص دست رساقت و, و جلالت ایشان جای بحث نیست ما اشکالات خاص خودمون رو ایشان در که حالا وارد بحث میشیم چون طولانیه این حسن بن علی نوه مرحوم عبدالله الله است گویا تو ما محمد حسن علی کوفی همینه حسن ابن علی ابن عبدالله نمغیره هم جدش از بزرگان اونم فی کلامون هم خود ایشون از بزرگان فیه کلام در عبارات رجالی ها نه در عبدالله نمغیره بحثی شده نه در حسن ابن علی خود من یک اشکالات خاص خودم دارم کلا جدی میشه ایشون از جایگاه بزرگار علی اسحاق ابن ابراهیم در این طبقه ما این مخصوصا مثل حسن علی ارزش نهال کرده نمیشناسیم این شخص کیه حسن ابن, ابن و الان پیشو مجهوله، با که خود من روی ذوق گفت که به اولی قدیمیا علم یقف، ذوق رجالی خودم احتمال دیدم اسحاق ابن ابراهیم معروف به ابن راهوی باشه که از بزرگان اهل سنت بود. احتمال اونو میدم و از علمای بزرگ اصحاب معروف راهوی تا مدت‌ها جزء کسانی که آرای صحیذ ذکر می‌شد حساب و به اصطلاح راهبه در لغت فارسی یعنی بچه ابراهیم راه که خلیفه از سال میتشه میگن راهبه من در سفر به دنیا بودم پدرم آمدن پدر مادرم در سفر بالا ب... چون در راه به دنیا شده میگن راهبه و الله واقعا که از راهبهل کرده ورشن اسحاق ابن ابراهیم ملقب به راهبه اسحاق ابن راه از بزرگان احادیث اهل احلی سنت از فقهاشون هم هست از اداد خراسانی هاست کوفی هم ها هست با اصلش از خراسان چرا چون احتمال میدن ایشان از نص ابن قابوس این نقل کرده باشه چون نصب قاووس شخصیت اجتماعی بوده. لخمی ها در کوفه جهها بودن اجتماعی نظر اجتماعی شخصیت داشتن. معون نجاشیم یه کان زامنزلت دم ها رو صاد برکزم و رضا و کان زامنزلت ظاهرم مورد از منزله لننج و منظرره اجتماعیه اون للحمی ها از مثلا خاندان مثل و عمرا بودندن حالت اینطوری، احتمال بیدم نسحاق ابن ابراهیم هم رو همین جلزشو نقر کرده یک شخصیت درست میکنم نه اینکه حالا خیلی روشیعه داشته. رو شخصیت اجتماعی بودنش نصر بن قابوس لخمی قال سمعت و ابا عبدالله احتمال من خیلی قویه یعنی ضعیف نیست اما به هر حال میگم الان فعلا شواهد که در متون روایت ما باشه نیست سمعت تو ابا عبدالله یقول المغنیت و ملعونه ملعونون منعکل کس با دقت همی؟ اگر این باشه لذا صاحب وسائل ازش یک استثناء فهمیده حلتی تضفل عرائز و لا یدخلو علیه هر رجال دقیقی کنیم شماره به اصطلاح کنم اگر این کتاب من خدمتونه هست اگر این جلدی که دست منه برایلا شماره باب بدم به حسب این صفحه‌ای که پیش من هر صفحه 103 شماره 103 بیه صفحه 103 به حسب این بابی که ایشون در اینجا دارن اگر من خاصن نکردم باب 24 باب 24 شماره 7 از همین ابواب ما یقطساد به. به حسب این صفحه‌ای که من دارم صفحه 103 این رو صدوق نرم کرده در کتاب خسال صدوق انهو یعنی از ابن الولید استادش محمد ابن حسن انه سفار انه الحسن ابن علی انه لکوفی از اینجا سند با کلنی یکی میشه همون حسن ابن علی ابن عبدالله مغیره است. و واقعا هم دقت کاره معلوم میشه دو نفر از این آقای حسن ابن علی نهار کرده یکی سفار ای که ابو علی اشعری به دو تا مسترم راه پیدا کرده دقت کردید شماره هفت از باب بیست و چهار ان ها ان سفار ان الحسن ابن علی الکوفی که بسیار بزرگ است هست کردم جلجلات قصیشان بحثی نیست ان اسحاق ابن ابراهیم خیلی عجیبه متن کلینی با متن مرگوم صدوق مونه میزن در سنده هیچ اشکال نداره ان نصر ابن قابوس این همونه قال سمیعت ابو عبد الله یقول المجم ها ملون این رو کلینی هست که تو رفتی واب نداشته لکاه و ملون ها و, و سااح ها این ستا رو مرو کلنی ح کرده و المغنیت ها مععت این مثل کلینیه فقط اینجا اضافه و من آواها و اکل کسبه ها ملون این آواها رو زیادی داده. فرق با نسخه کلینی سند صدوق هم صحیحه این نسخه هم صحیحه اگر اون اصحاق ابن افراهیم قبولش بکنیم فقط اونجا داره ملعونون من اکل کسبه ها اینجا اینطور داره و من آواها و اکل کسبه ها ملعونون یا و من آواها و آکل و کسبه ها ملعونون ممکنه آکل و کسبه ها بخونیم متون این ذی‌خیانتگی. وقت من آواها یعنی کسی که در خانه خودش مغنیه بیاره برای مردم قناغ بخونه. این هم ملعونه. ظاهرا من آواام مراد این باشه. یجعل هافي بيته و تغني ناز. پس این حدیث به دو راه مستقل به ما رسیده و از کتاب حسن نحلی کوفیس انصافا احتمال خیلی قویه که اصحاب ابن ابراهیم همون ابن راهوی باشه. و حدیث قابل قبول باشه این هم حدیث شماره چهار حدیث شماره تنج امراضه ببینید این بزرگان اهل سنت که دیگه فقیح بودن دو شهر ازشان آفاق گرفت بود رسما اینجور دروغ نمیگفتن نمیتونستن بگن محدیدیت داشتن وقتی بود از نصر نقابوس از عبد الله نقل کنه خب عبد الله در کوفه مدینه استن. هستن نوسرم جرفه هم هستن میگن ما داشیم خود نصرت نوابوس شخصیت اجتماعی، شخصیت کمی نیست نمی‌تونه حساب بنراده ازشون دروغ نه ما این بزرگانی که در حد واقعا شهرت اینا در حد شهرت جهانیه تو خراسان اینا به فتاواش عمل می‌کرد اینا دروغ اینطوری نمیگن اینا اختیارات باطل دارن اما دروغ نمیگن مثلا اینکه دوران هم بشه حدیث ابوهره و هر میرمون حدیث ابوهره نه اما جهل نمیچن اینطوری جهل نه از یک نفری که یک شخصیت اجتماعیه بعید می‌دونیم جهل رو چون ما مبنامون وصوغه شواهد عرفی ما اقلاعی ما دلات میکنه کنه که این قصه بتونه دروغ بود یعنی برای اون امکان ندارد منظلت اجتماعیش کاملا میاد پایین کاملا سقوط میکنه که نصر ابن قابوس که یک شخصی درشان با این دروح نهار کرد من نگفتانم شرطی میاد پایین نمی کنه دونه این هم رایدت ربایت شماره چهار که خب با ما و میخوره و جای نداره شماره 5 عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد یه مقدار این باب رو زیادتر خوندیم چون روایات این باب محل استشهاد مرحوم فیض و مرحوم صاحب کفایی عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد انا عبدالله بن حسن کردیم ایشان نوه علی بن جعفر معروفه عبدالله بن حسن نریو جعفر ایشان رو نمیشناسیم اینه که در کفایی گفته لا یب هستند تسیوسن ده انصافا مشکله و عرض کردیم اضافه برای اینکه ایشان رو نمی‌شناسید یه مشکل دیگری که در اینجا هست ایشون نسخه ای از کتاب جدش علی از نجعفر تو قوم میاره این نسخه خیلی جا نمی مشکل ما همچه یعنی از این نسخه کتاب علی از نجعفر فقط عبدالله ابن جعفر همیری نقل کرده شاید یک جایی دیگر مثلا یه حدیث واحد تو زیاد یا فلان دیده باشید و الله قمی ها تنها قومی که از این کتاب نه از این نسخه نقل میکنه عبدالله بن جعفر این دقت بفرمایید اصطلاحی از بر جز علمای حدیث هم دارن الان به نحوه اشاره ببین اصولا کتاب هایی که اصطلاحاً مصنفه عادتاً خیلی دنبال صحت و صغ نیستند دقت ما اصولا کتاب هایی داریم مصنف اصطلاحاً میگن مرحوم صدوق هم داره توی اول فقیر میگه من در این کتاب خودم ربادات صحیح اوردم ولم یکون قصدی قصد المسنفین من در فکر تصمیف نبودم ایراد جمعی ما مسنف اینطور بوده مصنف اصطلاحا در اون زمان اینطور بوده که دیگه دنبال صحت سند نبوده. مصنف یعنی چی؟ مثلا فرض کنید مرحوم شیخ صدوق کتاب خصال داره. کتاب خصال باب واحد، هر حدیث که توی لفظ واعد بود باب 2، باب سلاس باب 4، باب 5. این دنبال این بوده هر حدیث توی لفظ 5. این دیگه نمیاد نگاه کنه صحیح یا نقدات نکنه. این دنبال چی بوده؟ دنبال عدد بوده. لذا مصنفین به بسر... خود اینجا میگه مصنفین همه روایات رو میارن همه روات این چی؟ یعنی به صحت و صحب دیگه کاری نداره. کاری که مرحومه همیری در اینجا کرده معلوم نیست صحت سنت باشه اسمش قربل اسنابه. ذکر بکنید. یعنی سن می کرده مجموعه روایاتی که واسه ش کمه اونه بیاره این اسمش چی میشه؟ مصنف میشه؟ طبیعت این کار روشن شد؟ ت در این فکر بوده، واسطه کم بین او و امام ازداله، واسطه کم بین او و بن امام ازداله، واسطه کم بین او و بین, بین, بین موسی نجافه. اینجا واسطه ای او بین او و بن موسی نجافه، دو نفرن، هم, هم نجافه و بن نجافه، اند آخر موسی نجافه. لذا خوب دقت بکنید، این از همون زمان بوده، خیال نکن جدیده. میادند گفتن این کتاب مصنفه، وقتی میگن مصنفه. ما اصطلاحا بهش میگیم مثلا استیاب کرده موسوه دایت المعارفه مصنف خیلی مقیده به تصحیح نبوده لذا صدوق میگه من توی فقیه این کارو نمی کنم. این مصنف نیست اصطلاحا ما میگیم خیارات به لوقت عربی و به فارسی گزینش من اختیار کردم اون روایاتی که حجته آوردم هم یکون قصدی فی قصد المسنفین فی ایراد جمعی اما هر هرچی که روایت بوده بیارن نه روایات معینی که حجد از بینیابین الله لذا اگر این در کتاب همیری آمده این اعت... منشع نمیشه که تصور بکنیم ایشون تصفیح کرده چون کتاب همیری حالت مصنفی داره بگذب کنیم ولذا اعتماد بر این کتاب به این جهت در این نسخه به این جهت مشکله اومیه ها به این نسخه خیلی ترقیه و قبول نکردند. خب بعد از همیری رتبه مثلا کولینیز کولینی از این نقل نکرده بعد از اون رتبه باز یک واسطه بعد مرحوم صدوقه صدوق هم از این نقل نکرده اصولا این نسخه ای کتاب علیه نجعفن خیلی به این اصحاب ما راه نیفتار اشکال من بیشتر رو این جهت این یک مطلب, یه مطلب دیگر هست که لطیفه من بخوام نوبت بحث علی جعفر طولانی یعنی میخوام واضح بشم یک نکته بگم من در بحث صادقون اگه یادتون باشه از کردیم که کتاب علی جعفر که مرحوم شیخ مجلسی یک جا در جلد 10 بهار آورده حدود 400 خورده باید داره اون دو تا اخیرا میگوین دیگه چاپش الان به اسم مسائل علی جعفر نه یعنی چاپش کرده به اسم مسائل علی جعفر همون نسخه مجلسیه به این نسخه مجلسیه نسخه شیخ حرغه فرق نمی کنه یکیه اون نسخه 400 خورده ای رو چهارسد رو باید داره. این نسخه قربل اسناد دیویست داره باید داره از کلینی و مرحوم شیخ صدو و مرحوم شیخ توسی دو نسخه دیگه, دیگه دارن قیل از اینا اصلا این نسخه نقل نمی کنه. دو نسخه دیگه دارن. کنن باز در نسخه در این دوتا کتاب روایاتی هستی در پیش اونا در نسخه قربل اسناد بوده در نسخه مجلسی هم هست همین روایت اما نه شیخ کلینی او رو ورده نه شیخ صدوق رو ورده نه شیخ طوسی روایت کلیبی هم هست اون در بحث جناث این معناش چیه معناش اینه که بزرگان اصحاب ما نقاضین روایت رو قبول نکردن تو اون نسخه نبود حالا آره من کار به اختلاف نسخه و ترویج اون‌ها شما بحث داره تطبیق یه نکته رو از بکنم چون این کمزر روش توجه شده چرا اون 400 تا این دویست دار چرا این تفاوتش ببینید نسخه ای که مرحوم مجلسی نقل کرده احتمالا اصلش مال زیدی هاست از علیه نجفر نهار کرده این نسخه در اختیار اسماعیلی ها هم بوده همین نسخه بینه تو کتاب اضافت صاحب کتاب دارم نهار رو کن توضیحش صاحبه من ارز کردم من از اون طرف ما می دونیم که اسمایل ها به موسف جعفر اعتقاد ندارن اسمایلی ها چون میگه سالف اخی انا اخی قال سهل تا اخی اونا به موسف جعفر اعتقاد ندارن و سند نسخه دائم با سند بهار یکیه ما اونجا توضیحش ارز کردیم نسخه ای که در اختیار زیدی ها و اسمایلی ها بوده اینطور بوده ان علی بن جعفر ان اخی قال سهل تا عدی الان پیش دایمال اسلام سألت و عبیه پس اون نسخه بهار سألت تو عبی بوده این در حقیقت این سوالات با موسر نجعفر از امام صادق کردن اما تو قربل اسناد و در کافی و در فقیق و در تهذیب سألت و اخی علی بن جعفر این اخیق قال سألت و اخی. این البته در بهار اول بهار اگه ما دیجه دیده سالتو تو پرانسیس سالتو تو پرانسیسی سأل که تو, تو, پرانتز، تو, پرانتز، تو پرانتز هر دو رو عبی و هر دو برده. صحیحش اینه اون ای که چار ست تا سالتو عبدیه این که کمتره سالتو عقیه چون هی... نه نهیدن کسی اصلا متعرض شده باشه دیگه یک شرح طولانی داره که من بخوام توضیح طول توی میدشه در, در کتب اسماعیلی ها چون روز گفتم که اسماییلی آزش نهارو کنن ها اینا روایت امام کازر نمیدونن سوال و جواب رو از موسفن جعفر نمیدونن این رو از امام سادق میدونن بله موسفن جعفر راویه نه امام خوبزه ترسید در کتاب‌های ما، مثلا در قربل اسناد، این دیویستا همه سالتو اخیه در تمام موارد کافی و فقیه و است... نزدیم سالتو آخریه. تمام مهم. تو بهار همین نسخه آمده سالتو عبی و اخیه هر هرگز داره. سبب سالتو عبیه. لذا ما یه احتمال دادیم چون... کسی نگفتم. که کسی توال نگفتن یزدی که نگفتن یه احتمال دادیم که اصل نسخه سالتو عبی بوده و حدی 400 تا سال جواب بوده. بعدها خود علی بن جعفر از موسی بن جعفر که سوال کرده 200 تاشو امام موسی بن جعفر تایید کرد. شاید یک کتابی بوده شده بر امام صادق دیگه اینا توضیحات شما جای دیگه ارج می خوند. از این خوب دقت بکنید که این کتاب واحد فعلا این طور نقل شده ما بین سئل و عبی به پس این روایت در قربل اسناد آمده نسخه ای از کتاب علی بن جعفر که بزرگان خود بر اون اعتماد نکرده. بعد هم به نحو وجاده به صاحب بهار در قرن یازده رسیده و ها کذا به ساحل وسائه پس طبیعتا یک شبه قوی پیدا می‌کنه که اصلا این اون نسخه علی ابن جعفر نباشه اون نسخه سالت و عدی باشه اصلا دکن کردیم اما در گربانستان سالت و عخی آمده یک شبه اساسیه و این اقوا شاهد میشه برای که این حدیث رو اصحاب الغاش کردن بله در این حدیث داره در اید فطر و اید ازها و فرح که مجلس عروسی باشه لا بأس بلغنا مالم یعصبه در یک نسخه مالم یعصبه مالم یعصبه نسخه مختلف داره که انشاءالله فرش داره اشاءالله